سلام می خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی با کتاب افسانه‌های اوکراین در خدمتتون هستم. داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم می‌کنم از بخش دوم، قصه های سحر و جادو و اسم داستان هست جام جادویی. به نام خدا. تو روستای مرد فقیری با سه دختر زیباش زندگی می‌کردند. دختر اول ماریکا، دختر دوم هانوسیا و دختر سوم با بود. اونها زندگی فقیرانه ای داشتن اما چون بینشون دوستی و محبت بود احساس خوشبختی میکردند. دخترها بزرگ شدند و کم کم تو کارهای خونه و مزرعه به پدرشون کمک میکردن. روزی مرد با سه دختر جوان و زیباش به مزرعه رفتن تا گندم بکارن. یکدفه از داخل جنگل کالسکه زیبا و باشکویی پیدا شد و نزدیک اونها اومد و از داخل اون مردی جوان و برازنده و زیبا پیدا شد و به اونها سلام کرد مرد و دخترهاش جواب دادند مرد پرسید عجب شما با هم کار میکنید اونها گفتند بله گندم میکاریم مرد پرسید شما باید زندگی ای داشته باشین اینطور نیست مرد گفت بله همینطوره تا ببینم سرنوشت دخترهای من چه خواهد شد امیدوارم وقت و اقبال اونها بهتر از من باشه مرد گفت بخت و اقبال اونها خوب خواهد بود دست کم باید بگم بزرگترین دختر شما حتما خوشبخت میشه چرا که من در این لحظه اون رو از شما خواستگاری میکنم اون دو قصر با شکوه من به شادی و سعادت میرسه ای دختر زیبا آیا همسر من میشی؟ مرد نگاهی به دخترش ماریهکا کرد و پرسید نظر تو چیه دخترم؟ ماریهکا به دقت مرد رو ورانداز کرد. از اون خوشش اومد و با خودش فکر کرد که با ازدواج با اون مرد میتونه هم خودشو هم خانوادش رو خوشبخت کنه. بعد گفت موافقم هم که همسر این آقا بشم. مرد خندید و گفت فردا تو خونه ما جشن عروسی رو برپا می کنیم. اما مرد جوان گفت نه جشن فردا تو کاخ من برپا میشه الان اجازه می دهید که ماریهکای زیبا با من بیاد. در زم اسم من اولدرکیته. مرد قبول کرد که دخترش مارییکا همسر اولدرکیت بشه. بعد عروس و داماد سوار کارسکه شدند و با خانواده خودشون خداحافظی کردند و رفتند. یک سال گذشت و هیچ خبری از اولدرکیت و ماریهکا نشد. مرد با دو دختر دیگرش به مزرعه رفته بودن تا گندم بکارن که یک دفعه اولدرکیت رو دیدن که سوار ور کالسکه به سمت اونها نزدیک میشه. پدر و دخترهاش خوشحال شدند و به سمت کالسکه دویدن تا ماریهکای زیباشون رو ببینن. اما دیدن اولدرکیت تنهاست. بعد از سلام و احوال پرسی از ماریکا پرسیدن و اینکه چرا با اون نیومده تا بعد از یک سال خانواده خودش رو ببینه اون لرکیت گفت ماریکا به تازگی مادر شد و از من خواسته که پیش شما بیام و خواهش کنم که هانوسیا با من پیش اون بیاد تا تو بچه داری به اون کمک کنه و بعد پیش شما برگرده آنوسیا که هم دلش برای خواهرش ماریکا تنگ شده بود و هم کنجکاو بود که زندگی و نوزادش رو ببینه بدون تأمل و صبر پذیرفت که با اون بره. پدر هم قبول کرد. آنوسیا با پدر و خواهرش خداویسی کرد و سوار کارالسکه شد و رفت. یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال گذشت و انتظار پدر و دختر برای دیدن ماریکا و سیاه به نتیجه ای نرسید. سال بعد مرد با تنها دخترش واسلینکا به مزرعه رفته بود که گندم بکاره. باز هم کالسکای اولدرکید پیدا شد، پیاده شد و سلام کرد. پدر احوال دو دخترش رو ازش پرسید و گله کرد که چرا اونها به دیدار پدر و خواهرش نیومدن. اولدرکید توضیحی کرد و گفت: من به هر دو اصرار کردم که پیش شما بیان اما مارییکا که کودک کودکش و هانوسیا به شدت بیماره. اونها منتظرن که شما رو ببینن. اگر اجازه بدهید واسلینکا با من بیاد تا از هانوسیا پستاری کنه. وقتی مشکلات ما حل شد همه با هم به دیدار شما می پدر که دلتنگ دختراش بود، اول قبول نمیکرد اما با اصرار واسیلینکا که دوست داشت رو ببینه قبول کرد و گفت قبول میکنم که بری و اما باید سه روز دیگه برگردی من بیشتر از این طاقت دوری شما دخترامو ندارم آخه من تو این دنیا کسی جز شما رو ندارم اولدرکید از اون تشکر کرد و به همراه واسیلینکا با پدر خداحافظی کردند و به راه افتادند اسبها ابتدار روی زمین به سرعت میدویدند و بعد از اون به هوا بلند شدن و تو آسمون پرواز کنان رفتند و رفتند تا به کاخی سنگی رسیدن. دروازه بزرگ و روبانگیز باز شد و اسبها و کالسکه وارد اون شدند واسلینکا اون چیزی رو که میدید باور نمیکرد وقتی رسیدن اولدرکیت ناگهان ناپدید شد واسی خودش رو تنهای تنها دید. مدتی منتظر خواهرهاش نشست اما چون خبری از اونها نشد بلند شد و اونها رو صدا زد. بارها و بارها با صدای بلند اسم اونها رو به زبون آورد اما هیچ جوابی از هیچ سمتی نشنید. احساس خطر کرد موضوع احوار رو غیر طبیعی دید. بعد روی تخت سنگی نشست و های های گریه کرد. یک دفعه کنار خودش پیرزنی دید که از اون دلیل گری کردنش رو میپرسید. واسطه گریه کنان گفت منو اینجا ورده که خواهرهامو ببینم اما خبری از هیچ کدومشون نیست. من احساس تنهایی و خطر میکنم. اینجا کجاست؟ پیرزن، عفوص گفت دخترم خواهرات رو به این زودیها نخواهید دید. اول لرکید اونها رو تو انباری تاریک و سیاست کرده و تا اونجای که بتونه زجرشون میده تو را هم به زودی پیش اونها میبره متاسفم که شما خواهر فریب اون رو خوردین و پای خودتون رو وارد این دام شدین و گفت نه مادر جان من اسیر نمیشم من فرار میکنم پیرزن گفت نه، هیچ کس نمیتونه از این این زندان هولناک فرار کنه. تمام درها قفله و تنها کلید طلایی میتونه اونها رو باز کنه. و سیرینکا گفت، لطفاً به من کمک کنید. من چه کاری میتونم بکنم؟ پیر زن کمربندی زریف و نازک به اون داد و گفت دختر جان، این کمربند رو دور کمرت ببند و وقتی اولدرکیت اومد، با اون مهربون باش. اون از تو میپرسه که آیا همسرش میشوی یا نه؟ تو دستت رو زیر کمربند بگذار و بگو که دوست داری همسر اون بشوی. بگو با تمام وجود دوستش داری، اون رو بیشتر از پدر و خواهرها دوست داری. ولی یادت باشه که وقتی این حرفها رو به لب میاری، حتما دستت زیر کمربند جادویی باشه. این کمربند به تو کمک میکنه که نجات پیدا کنی. پیرزن بعد از گفتن این جملات ناپدید شد شب هنگام اولدرکید اومد و از واسلینکا پرسید دختر جان آیا زن من میشی واسلینکا طبق دستور پیرزن عمل کرد و اون رو فریب داد و اون شب برای اولدرکید عزیز پخت و با هم خوردن بعد از اون الدرکید به اون گفت من عجله دارم و باید به سفر برم این دست کلید رو بگیر و به اون باش اما نباید هیچ دعی رو باز کنی. من هفته بعد برمیگردم و هرچه رو دوست داشته باشی برات میارم. تو باید مراقب کاخم هم باشی. خیال من از این بابت راحت باشه. واسرینکا گفت شوهر عزیزم خیالت راحت باشه. من به توصیه های تو مو به مو عمل میکنم. به سلامت به سفر برو و زود برگرد. خدا به هم راحت باشه. الدرکید، اون رو بوسید و راهی سفر شد. واسیلینکا از او به شدت متنفر بود، اما خودش رو کنترل کرد و چیزی نگفت. بعد از رفتن اولدرکیت، چون نگران و پریشون بود، خوابش نمیبرد. به باغ رفت و روی علفها دراز کشید و به حال خودش و خواهرای مظلوم اسیرش زار زار گریه کرد. و وقتی گریش تموم شد و کمی آرام گرفت، صداهایی ضعیف و خفه از زیر زمین شنید. این صدای خواهرش بود که نالکونام میگفتن شما رو به خدا قسم میدیم ما رو نجات بدین. ما رو از این سیاهچال نجات بدین. اول لرکید ما رو شکنجه میکنه. خدای تو نابودش کن. واسیلینکا اون شب و روز بعد تمام کاخ رو گشت اما نتونست در ورودی سیاهچال رو پیدا کنه. شب دوم بسیار خسته بود و به خواب رفت. پیر زن به خوابش اومد و اون رو راهنمایی کرد و گفت دختر جان به اتاق شماره دوازه برو دیوارهاش رو به خوبی و دقت بررسی کن در سیاهچال رو اونجا پیدا می از خواب پرید و نفس نفس زنان به اون اتاق رفت و گشت و گشت تا در سیاه رو پیدا کرد اون رو با کلیدی که الدرکیت داده بود باز کرد و وارد اون زندان مخوف شد در اولین اتاق ابتداس جوان زیبا و پاکتل رو دید که اسیر اولدرکید بودن. یکی از اونها فریاد شادی برآورد و از واسیلینکا خواهش کرد که جام رنگ ورنگ رو پیدا کنه و برای اونها آب بیاره. چرا که بسیار تشنه. اون همین کار انجام داد. جوانها از اون جام جادویی آب نوشیدند و قدرتشان چند برابر شد. میله های زندون را شکوندند و بیرون اومدند، واسیلینکا تشکر کردند اونها باور نمیکردند که از اون سیاهچال تنگ و تاریک و بدبو نجات پیدا کردن واسیلینکا از اونها پرسید آیا شما نمیدونید اولرکید خواهرهای منو کجا زندانی کرده اونها گفتند خواهرهای تو در زندانی زیر درخت آهنی هستن دوباره جام رنگ, رنگ رو ببر و برای ما آب بیار تا قدرتمند بشیم و رو نجات بدیم اون رفت و آب آورد، اونها نوشیدند و بسیار نیرومند شدند و به همراه واسییلننگ رفتند. درخت آهنین رو شکستند و خواهران قریب و بیمار را از زندان نجات دادند. سه خواهر همدیگر رو تو آغوش گرفتند و حق گریهشون دیوار زندان را لرزون. وغض دو ساله اونها ترکیده بود از اصارت و اقبال شوم خودشون و از دوری پدر و زندگی طرخ خودشون دردادل کردند تا اینکه آروم گرفتن، یکدیگر رو بوسیدن، عشق خودشون رو پاک کردند و لبخند زنان خداوند رو شکر کردند انقدر شاد و امیدوار بودن که متوجه نشدن اولدرکیت زودتر از موقع سفر برگشته و چون جام جادوی رنگارنگ را رنگ رو ندیده آب نخورد و خسته و ناتوان به خواب رفته. واسلینکا یک دفعه متوجه شد همه درها رو بست و به اونها گفت هرچه چه باید فرار کنند. بعد جام جادویی رو برداشتند و آب خوردند و نیرومند و امیدوار پا به فرار گذاشتند. اول لرکید که خورد و خسته از سفر اومد و به خوابی امیق فرو رفته بود و خورناسته این نفرت انگیزش کاخ رو میلرزون سرانجام بیدار شد و دنبال واسیلین گشت اون رو ندید سری به زندان زد و دید زندانیانش همه با هم فرار کردند. فهمید که چه ساده لوحانه فری به خورده به سرعت به دنبال اونها روونه شدن و هر لحظه به اونها نزدیک و نزدیکتر میشد شد شش جوون گوریزان و نفس نفس زنان رفتند و رفتند تا به مرقی رسیدند و روی پای او خانه ای دیدند. آسیلینکا گفت ماریکا و یکی از پسرها در این خانه پنهان بشن و بقیه به راه خودشون ادامه بدیدند. ماریکا و یکی از پسرها داخل خانه رفتند. آسیلینکا در رو گفت کرد و با بقیه همراهاش پا به فرار گذاشتند. دویدند و دویدند و از اونجا دور شدند اولدرکید رسید و از خانه پرسید آیا کسی آنجا ساکن است هما خانه هیچ جوابی نداد اولدرکید خشمگین شد و گفت اگر وقت داشتم حتما تو رو میسوزاندم و خاکسترت میکردم آنها فرار کردن و در جنگلی زیبا خانه دیگری دیدند هانوسیا و دومین پسر تو اون خونه ساکن شدند و بقیه فرار کردند اولدرکیت به اونجا رسید از خونه پرسید آیا کسی ساکن آنجاست یا نه و چون پاسخی نشنید عصبانی شد و رفت. وسیلینکا و سومین پسر دویدند و دویدند تا به یک مرغابی رسیدند. مرغابی روی پای خودش خونه ای داشت. اون دو داخل خونه شدند و در را پشت قفل کردند. اولدرکیت به اونجا رسید و مثل دفعهای قبل از خانه جویای دخترها و پسرها شد. و جوابی نشنید و شکست خورد و نامید به راه خودش ادامه داد. رفت و رفت تا به دریا رسید. و چون تلاش اون بیسمر بود و به فراریان نرسیده بود، خودش رو توی دریا غرق کرد. سه دختر و سه پسری که از زندان رها شده بودند به خانه پدر دخترها رفتند. شادی و سرور و جشن ازدواج اونها توی یک شب برگزار شد، و اون سه جفت خوشبخت سالهای سال با هم در خوشی و ناز و نعمت زندگی کردند جام جادویی هم تو مشکلات زندگی به اونها کمک کرد و گره از کار فرو بسته اونها باز میکرد. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها